حکیمی را پرسیدند، چندین درخت نامور که خدای عزبجل آفریده است و برومند، هیچک را آزاد نخواندهاند مگر سرو را که سمرهی ندارد، گویی در این چه حکمت است؟ گفت، هر یکی را دخلی معین است و وقتی معلوم، که گاهی به وجود آن تازند و گاهی به عدم آن پجمرده و سرب را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است و این است صفت آزادگان بر چه می دل دلمنه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بقداد. گرد دست براید چون نخل باش کریم، برد دست نیاید چو سر باش آزاد.